هر که با بزرگان ستی خون خود ریزد، خون خود بریزد. خویشتن را بزرگ پنداری، راست گفتند یک دو بیند لوچ. زود بینی شکست پیشانی، تو که بازی کنی به سر با قوج.